در برنامه امروز نقد باورها میهمان جدیدمان جناب آقای کوروش مرشد صنعتگر و نویسنده کتاب عقب افتادگی علمی یا علم عقب افتادگی درباره عدم جذب علم و دانش به معنای واقعی آن در ایران برامون توضیح میدهند جناب آقای مرشد اگر ممکنه درباره عنوان کتابتون عقب افتادگی علمی یا علم عقب افتادگی برامون کمی توضیح بدید به قول دکتر عبدالسلام فیزیکدان پاکستانی عقب ماندگی بهترین تعریف براش عقب ماندگی در علمه حقیقت جهانم اینو نشون میده کشورهایی که صاحب و مولد علم هستن علم منظورم دانش جدیدیه که خواستگاهش غربه امدتا در اروفای غربی رشد کرد و بعد هم گسترش بده کرد به کشورهایی که الان در حدود چهل کشور در دنیا هست موتور تعبولات جدید علم علرغم همه ظواهر و همه مظاهری که ما می‌بینیم اون چی که درون این تعولات به عنوان دینامیسم عمل میکنه و موتور محرکه است علم، علم به مفهوم دانش جدید غرب نه حالا بر اینکه که خیلی هم تعارف نکنیم دقیقا به بحنی فیزیک و شیمی و ریاضی و علومی که از این علوم طبیعی سعی میکنن در روشناسی تبعیت بکنن چون فوری خلط میشه با فلسفه و علوم دیگری و این ربطی به این چیزا نداره اون چی که علم جدید غربه یه مقوله جدیدیست که ژاپن این کار رو تونسته بکنه و این خداگاهی رو پیدا بکنه خداگاهی ملی و ما تقریبا تحولات اجتماعیمون شاید 20 سال از ژاپن جلوتر بود دارالفرون از پولی تکنیک توکیو 20 سال زودتر تحسیس شده اما اونا به قلب حادثه زدن و ما به حواشی یعنی متون درسی دارالفنون من خیلی دقت کردم پیدا کردم و نگاه کردم تماما حول مهارت و فن و تکنیک سازمان یافته ولی اونا مستقیماً زدن به علوم اینطور که من سمبولیک تو این کتاب گفتم ما توپ و لیختگری رو دیدیم اونا میتالورژی و علوم به شیمی و فلسچناسی رو دیدن علم که عرض میکنم منظور فقط اون چیزی نیست که توی دانشگاه رد و در میشه منظور نهاد علمه شما توی جامعه نهاد قدرت دارین نهاد اقتصاد دارین نهاد دین دارین که اینا با مجموعه از سخت و نرمافزارها کار میکنن مستقل از افراد و مستقل از, از محتواش حتی و برای جامعه تعبولاتش رو تعریف میکنن کار میکنه در جامعه این نهاد علم در ایران جذب نشده اساره وجود علم هم جذب نشده که نظام اندیشه علمی است که جامعه بتواند به کمک یه نهادی به نام نهاد علم مسائل خودش رو تعریف و حل بکنه نقد بکنه و بهتر بکنه همینه که ما همش توی روند سعی و خطا ای به تاریخ می‌فهمندیم، که واقعیت نشون میده، این هایی که مولد علمند من ناخالص ملی سرانه شون بسیار بالاست و اون هایی که صاحب این علم نیستن، بسیار پایینه. یعنی اگر ما اغلب رو بر حسب درآمد ملی سرانه هم تعریف بکنیم، به طور مشهود دیده میشه که حتی علم و غیر علم تقسیم میشه. ایران متاسفانه فاقد علم و پس از آشنایی با محیط زمینم در یک صد 150 سال اخیر موفق میجذبه علم نشده و لذا در بین کشورهای عرب مونده قرار داره. قبل از اینکه جلوتر بریم در این مقوله جغرافیا مرشد در کتابتون یکی از موضوعات کثیری که توجه خواننده رو جلب میکنه اشورتون به مثال آسفالت بود. نوشته اید که ما بعد از بیش از هفتاد سال برکرداری از آسفال هنوز نتونستیم دانش واقعی این علم رو ده کنیم درست ممکنه در این بار توضیح بدید البته می که اینو بستش داد به صنایه اتومبیل چون اونم هم در همین شرایطه ما بیش از چهل سالی که صنایه منتاج اتومبیل داریم ولی آیا می تونیم امروز مثلا یک پیستون خودمون بسازیم یا اختراک کنیم حالا اگر هم بتونیم درست کنیم اون باز هم تو مغوله مهارت و تکنیکه اما اینکه یک تیستان بتونیم محاسبه بکنیم بعید میدونم یعنی ما چهل سال یه خودروی رو تولید کردیم که به اعتقاد من اگر جامعه شناسا اجازه بدن از هر تحول اقتصادی یا اجتماعی دیگه به زندگی ایرانیا ها بود یعنی این پیکان بیش از همه تحولات که ما پیشش خودمون تو این 40 سال اخیر دیدیم بر زندگی فرد فرد ایرانیا، بر اخلاق ملی ایرانیا، بر منششون روش زندگیشون بیشتر مؤثر بود اما ما این پیکان رو 40 سال تولید کردیم قطعی یقین آخریش از اولیش بدتر بود قطعی یقین کیفیت پایینتری داشت اما باز این مسئله اصلی نیست مثلا اینه که ما حتی یک گزارش چند صفحه‌ای برای اتفاق به این مهمی و تاریخی در کشورمون نمیتونیم بنویسیم که چرا ما پیکان تولید می‌کنیم، اما توان بهتر کردن بهتر سازیشون نداریم آقابت هم باید تلکیلش کنیم در مورد آسفال خیلی روشنه ما اولین آسفال زارن در 1202 در چراغ برق برامون ریختن نمیدونم دقیقاً شاید بلژیکی ها این کاری کرده باشن از اون تاریخ تا حالا میلیاردها دلار ما در کشور آسفالت ریختیم و همین چند روز پیش باز وزیر راه جدید گله میکرد از کیفیت آسالت و باز برخوردی که ایشون میکرد برخوردهای مهارتی بود که خوب صفر نمیکوبیم خوب نمی‌کوبیم و کوچکترین تذکری تو ذهن ایشون نبود که اصلا شاید ما علمشو نداریم ما نمیدونیم چرا غیر تو باران ایران حل میشه و این یه مسئله دانشگاهی و یه مسئله آلمانه است نه مسئله مهارتی یا اینکه آدما نمیتونن خوب بکوون یا دقت نمیکنن. شما منبتكارا و خاتمکارا هم بیارین نمیتونن پیکان بسازن نمیتونن آسفالت خوب بریزن به نیت و به اینها نیست اونچه که ما فاقدش هستیم علمشه حتی اگر تمام ضوایرش هم داریم ما ماشینساز صاحب ایزو دو هزار و نمیدونم دو 2001 در ایران هستیم که ما شانت آسفالت میسازن ما ساختمانی در ایران میسازن کن ما آسفالت خوب نداریم و واقعا من که تو جاده حرکت میکنم کارگام بیرونی دهران هست میبینم دائم هر ساله ما گرفتار این آسفالت هست تمام ابواب زندگیمون همین مسئله هست فیکانمون به تاریخ میپیونده بدون این که بکان جدیدتری به وجود اومده باشه ولی که یک مقاله دو صفحه‌ای هم در سراسر تاریخچه روشنفکری معاصر ایران نمی‌بینید که راجع به پدیده به این مهمی نوشته شده باشه جناب آقای مرشد ما الان ده ها ساله که لاغرب با ظواهر صنعت آشنا هستیم و در استفاده از اختراعات دیگران هم که فکر کنم در مقام اول دنیا اگر قرار نداشته باشیم در همون های اول و دوم هستیم ما خیلی خوب بلدیم که تولیدات دیگران را ازش استفاده کنیم. از طرف دیگه ما صدها هزار دانشجو به خارج اعزام کردیم و شمار کثیری از این دانشجویان با مدارک تحصیلی عالی بازگشتند. این همه لیسانس داریم، این همه درجه دکترا داریم. یاد آقای کردان افتادم ولی همه این مدارک جلی نیست. با این حال ما هنوز در گام اول صنعت یعنی هنوز در مونتاژ هستیم. این چرا علتش چیه به نظر شما؟ بلا من دنبال اینی که علتش چیه خیلی راحت نمیتونم بگردم آسون نیست یکی از دقدقه که من داشتم همین بود ما در واقع هنوز هم در زندگی اجتماعیمون علا رغم زواهر علا فوران پودی که به خاطر نفت داریم در واقع در اصر ما قبل علم زندگی میکنیم مثال بار تشبیه بیارین تهران از تهران بریم تا همین قضبیین که نزدیکترین شهره و بسیار هم سنتیه. شما بینین در کنار کارخن های بظاهر پیشرفته که ماشین‌آلات بسیار پیشرفته دارن همون کنار اون کارخونه در مثلا 45 ۵ تهران. آدم های سال قبل دارن گوسنده ۱زار سال قبل رو یعنی مداف فرود اکشن و تولید ۱ سال قبل رو شما نایش میدن. از عزیز دعوت می کنم که در برنامه جمعه آینده نقد باورها به بخش دوم توضیحات آموزنده جناب آقای کروش مرشد توجه فرمایند.